کتاب آه بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام زینب دختر علی ابن ابی طالب برخواست و گفت سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و درود خداوند بر پیغمبر و خاندان او باد همه خدای سبحانه راست گفت که رسوایی و زشتکاری فرجام آنهاست که آیات خدا را تکذیب کردند و به تمسخرش گرفتند یزید پنداری که چون اطراف زمین و آفاق آسمان را بر ما بستی تا ما را بر دیوار به هر سوی کشانیدند نزد خدا خواریم و تو بر وی گرامی و این غلبه تو بر ما اسفر و آبروی توست نزد خدا پس بینی بالا کشیدی و خرم و شادان به خود بالیدی که دنیا در چنبر کمند تو بسته و کارهای تو آراسته و ملک و پادشاهی ما تو را صافی گشته اندکی آهسته تر فراموش کردی قول خدای تعالی را که کافران نپندارند چون مهلتشان دادیم خوبی ایشان خواهیم نچنان است ما آنها را مهلت دهیم تا گناه بیشتر کنند و عذابی دردناک در انتظارشان باشد ای پسر آن مردمی که جد من اسیرشان کرد پس از آن آزاد کرد از عدل است که تو زنان و کنیزان خود را پشت پرده نشانی و دختران رسول را اسیر بدین سوی آن سوی کشانی پرده آنها بدری روی آنها بگشایی بی پرستار و یاور و نگهداری که از مردانشان مانده باشد دشمنان آنها را از شهری به شهری برند و بومی و قریب نزدیک و دور وزیع و شریف چشم به دانها دوزند چگونه امید دلسوزی و غمگساری باشد از آن که دهانش جگر پاکان را بجوید و گوشتش از خون شهیدان بروید چگونه به دشمنی ما خانواده تاب نکند آنکه سوی ما به چشم کینه و بغز نگرد؟ میگویی کاش پدرانم بودند و هلهله میکردند و میگفتند ای یزید شلمه باد دستد؟ به چوب آهنگ دندان حسین سید جوانان بهشت کرده ای؟ نه خود را گناهکار دانی و نه این عمل را بزرگ شماری؟ چرا نگویی؟ که زخم را ناسور کردی و شکافتی و ریش را ریشکن کردی و سوختی و خون زرریت پیغمبر را که از آل عبد مطلب ستارگان زمین بودند ریختی یاد اصلاف نیاکان خود کرده ای و آنان را خانده ای و نازش است خواسته ای؟ قم مخور که همین زودی ها نزد آنان روی و آرزو کنی کاش دستت خشک و زبانت گنگ شده بود و آن سخن نمی گفتی و آن عمل نمی کردی. خدایا داد ما بستان و از این ستمگران بکش انتقام ما را و خشم تو فرو آید بر که خون ما بریخت و همات ما را بکشت، به خدا قسم که پوست خودت را شکافتی و گوشت خودت را پاره پاره کردی، و بر رسول خدا درایی با آن بار که بر دوش داری از ریختن خون دودمان وی و شکستن حرمت اطرت وی آنجا خداوند پریشانی آنها را به جمعیت مبدل کند و داد آنها بستاند و مپندار آنها که در راه خدا کشته شده اند مرده اند زنده اند و نزد پروردگار خود روزی می خورند همین بس که خدا حاکم است و محمد خسمت و جبرئیل پشتش آن کس که کار را برای تو ساخت و پرداخت و تو را بار گردن مسلمانان کرد به زودی بداند که پاداش ستمکاران بد است و آگاه گردد که مقام کدام یک شما بدتر و لشگر کدام یک زعیفتر است و اگر مسائب روزگار با من این جنایت کرد و ناچارم کرد با تو سخنگویم باز تو را بسیار پست دانم و سرزنش های عظیم و نکوهش بسیار کنمد و این که من تو را کم می شمارم و سرزنش تو را عظیم می‌دانم، نه برای آن است که خطاب در تو فایده می بعد از آن که دیده های مسلمانان را گریان و سینه های ایشان را بریان کردی موعزه ها چه سود میبخشد در دلهای سنگین و جانهای تاغی و بدنهای مملو از سخط حق تعالی و لعنت رسول خدا و سینه‌هایی که شیطان آشیانه کرده درن، به آنت همینها تو کردی آنچه کردی زهی تعجب است کشته شدن پرهیز کاران و فرزندان پیغمبران و سلاله اوسیای ایشان به دست های آزاد شدگان خبیس و نسل های زناکاران فاجر خون ما از سرپنجه های شما میریزد و گوشت ما از دهنهای شما بیرون میافتد و گرد آن بدن های پاک و پاکیزه گرگان حلقه زده اند و کفداران آنها را در خاک می غلطانند. شکوه به خدا بریم و اعتماد بر او کنیم پس هر مکش که داری بساز و هر جهد که خواهی بکن به خدا سوگند، ذکر ما را از یادها محف نتوانی کرد و وحی ما را که خداوند فرستاد نتوانی میراند و به ما نتوانی رسید و ننگ این ستم را از خیش نتوانی ستود. رأی تو است و شماره ایام دولت تو اندک و جمعیت تو به پریشانی گراید. آن روز که منادی فریاد زند، علا لعنت الله علی الظالمین بهوش که لعنت خدا بر ستمکاران است سپاس خدا را که اول ما را به سعادت و مغفرت ختم کرد و آخر ما را به شهادت و رحمت از خدا خواهیم که ثواب آنها را کامل کند و بی و خود او بر ما نیکو خلف بود او مهربان است و او برای ما کافی است و بهترین پشتیبان است چون زینب نشست یزید شعر خواند که فریادی است که از زنان شایسته است و داغدیدگان دیدگان را نوهگری آسان است. فاطمه دختر حسین گفت مردی شامی سرخ فام نگاه به من افکند برخاست و گفت ای امیرالمؤمنین این دخترک را به من ببخش و مرا خواست و من دختری زیبا روی بودم برخیش بلرزیدم و پنداشتم این کار توانند به جامعه عمم زینب درآویختم. به آن مرد گفت دروغ گفتی به خدا سوگند اگر بمیری چنین شوخ چشمی نه تو توانی کرد و نه یزید برای شفت و گفت دروغ گفتی به خدا قسم که می توانم و اگر خواهم بکنم زینب گفت هرگز نتوانی والله خداوند تو را بر این قدرت نداده است مگر از دین ما بیرون روی و دین دیگری گیری یزید از خشم برف و گفت در روی من این سخن می گویی پدر و برادرت از دین بیرون رفتند زینب گفت تو و جد و پدرت اگر مسلمان باشید به دین جد و پدر و برادر من هدایت یافتید یزید گفت دروغ گفتی دشمن خدا زینب گفت تو امیری و دست دست توست به ستم دشنام میدهی و به قدرت زور میگویی گویا شرم کرد و خاموش شد شامی آن کلام باز گفت یزید جواب داد دور شو! خدا تو را مرگ دهد و از زمین بردارد و بعضی گفتند او که مرد شامی به وینگری یریست و خواست فاطمه دختر علی بود یکی از دانشمندان یهود در مجلس یزید بود پرسید این جوان کیست؟ گفتند علی ابن حسین گفت حسین پسر که بود؟ گفتند علی ابن طالب گفت مادرش گفتند فاطمه بنت محمد گفت سبحان الله پسر دختر پیغمبر خود را به این زودی کشید، پاس حرمت خاندان او را پس از وی نداشتید؟ به خدا قسم که اگر موسی امران نبیره ای از خود گذاشته بود او را می پرستیدی. شما دیروز پیغمبرتان از جهان رفت بر سر فرزند او ریخدید و او را کشتید؟ چه بد امتی هستید؟ یزید بفرمود تا سه بار مشت بر گلوی او زدند دانشمند یهودی برخاست و می گفت خواه مرا بزنید، خواه بکشید، خواه رها کنید، من در تورات خاندم که هرکس فرزند پیغمبری را بکشد، پیوسته ملعون باشد و اگر مرد در دوزخ بسوزد. ابن عباس بعدها نامی به یزید نوشت. کدام شماتت بزرگتر از اون که دختران و کودکان و زنان خاندان رسول خدا را، اسیر و گرفتار و غارت زده از عراق به شام بردی تا قدرت خود را به مردم بنمایی و ببینند ما را مقهور کردی و بر خاندان رسول چیره گشتی و به گمانت کین خیش و تبار کافر خود را در روز بعد از ما کشیدی و آن بغز که مانند آتش در چوب آتش زنه پوشیده بودی ظاهر کردی تو و پدرت خون عثمان را دست‌آویزان آن کین توزیها ساختید. وای بر تو از عذاب خداوند حاکم روز جزا. به خدا سوگند که اگر از زخم دست من برهی، از زخم زبانم نرهی. سنگ و خاکت در دهان باد که سخت بیخرد و ناکسی و خاک بر سرت که نکوهید مردی و بدان قرر مباش باش که امروز بر ما زفر یافتی. به خدا قسم، اگرچه امروز ما مغلوب تو شدیم فردا غالب شویم نزد آن حاکم عادلی که در حکم ستم نکند و به همین زودی تو را با رنج و سختی از این جهان بیرون برد گناه و نکوهیده و منفور پس هرچه میتوانی خوش بزی ای پدر مرده و گناه افزون کن و سلام هر را که در مسیر هدایت باشد یزید امر کرد سرها را از دروازه های دمشق بیاویختند. سر حسین را چهر روز بر مناره مسجد جامع آویختند و سایر سرها را بر در مساجد و دروازه های شهر و یک روز هم بر در سرای یزید بیاویختند. یکی از بزرگان تابعین چون سر حسین را در شام دید یک ماه خود را پنهان کرد. پس از یک ماه او را یافتند از سبب غیبتش پرسیدند گفت نمی بینید چه بلایی بر ما آمد و این شعر انشا کرد ای پسر دختر محمد سر تو را خون آلوده آوردند و گویی با ریختن خون تو آشکارا و به عمد پیغمبر را کشتند، تو را تشنه کشتند و پاس قرآن و تعویل آن را در کشتن تو نداشتند. برای تو بانگ با به با الله و اکبر بلند کردند با آنکه به کشتن تو الله و اکبر و لا اله الا الله را کشتند یزید زنان حسین را با علی ابن الحسین به زندانی کرد ویران که از سرما و گرما محفوظ نبودند تا رخسارشان پوست انداخت و خونابه جاری شد زینب گفت زن عربی نزد ما نیاید مگر مملوکه یا ام ولد که آنها مانند ما اسیر شدند و از سوز دل ما آگاهند و زنان تا در آن شهر بودند به سوز ناله زبان گرفته بودند و آهزاری می و مصیبت آنان بزرگ شده بود یکی از ایشان گفت ما را در این خانه منزل دادند که سقف فرو افتاد و ما را بکشد پاسبانان به زبان رومی گفتند اینها را بنگرید از خراب شدن خانه میترسان با آنکه فردا آنها را بیرون میبرند و میکشند علی ابن الحسین گفت هیچ از ما زبان رومی را نیکو نمی‌داند جز من روزی جمعه بود یزید خطیبی را امر کرد بر فراز منبر برآید و شیخین را ستایش کند و هرچه بر زبانش ناسزا آید به علی و حسین بگوید پس خطیب سپاس و ستایش خدای را به جا آورد و آن را ناسزا گفت و در ستایش معاویه و یزید سخند کرد و هر امر نیکی به دانها نسبت داد علی ابن الحسین فریاد زد ای خطیب وای بر تو خشم خداوند را به خوشنودی آفریدگان خریدی جای خیش را در آتش آماده ببین. آنگاه گفت ای یزید مرا رخصت ده تا بر فراز شوم و سخنانی گویم که خوشنودی خدا در آن باشد و اهل مجلس از شنیدن آن اجر و سواب برند یزید از نداد مردم گفتند یا امیر المؤمنین اجازت ده به منبر رود شاید از او چیزی شنوین گفت اگر بر فراز منبر رود تا مرا با عال سفیان رسوا نکند فرود نیاید گفتند یا امیر المؤمنین این نوجوان خردسال چه توانت کرد؟ پسرش معاویه خورد بود. گفت ای پدر از خطبه خواندن او چه خیزد؟ ازنده تا خطبه بخواند یزید گفت شما از این خانواده در چه گمانید؟ کام این خاندان را در کودکی به علم برداشتند. آنها علم و فساحت را به ارث دارند. از آن ترسم که خطبه او فتنه انگیزد و و بال آن به ما رسد و مردم پای مردی تا اجازت داد علی ابن الحسین به منبر برآمد. سپاس خداوندی را که وجودش را آغاز نیست و همیشه هست و نابود نگردد اول بودن او را ابتدا نیست و آخریت او را انتها نه پس از نابود شدن آفریدگان باقی ماند شبها و روزها را اندازه معین کرده است و نصیب هر یک از مردم را عطا فرموده بزرگ است خداوند پادشاه دانا ای مردم به ما شش چیز داده شده که به مردم دیگر هم کم و بیش دادند و به هفت چیز برتری یافتیم که غیر ما را ندادند آن شش چیز دانش است و بردباری و بخشش و فصاحت و دلاوری و دوستی در دل مؤمنان اما آن هفت چیز که بدان برتری داریم بر دیگران پیغمبر مختار محمد از ماست و صدیق که به او اول ایمان آورد یعنی علی از ماست و جعفر طیار از ماست و حمزه شیر خدا و رسول او از ماست و دو سبت این امت از مایند و مهدی که دجال را میکشد از ماست هر کس مرا میشناست شناست و هر کس نشناست گوهر و نژاد خیش را بگویم تا بشناسد ای مردم منم پسر مکه و منا منم پسر زمزم و صفا من پسر کسی هستم که زکات را در گوشه عبایش میگرفت و به مسلمانان میداد من پسر کسی هستم که بهترین کسی بود که سعی و تواف می گذارد و حج به آورد و لبیک می گفت من پسر کسی هستم که بر براغ نشست و به آسمان رفت از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر کرد پس پاک است خداوندی که او را سیر داد من پسر کسی هستم که جبرئیل او را تا صدرت المنتها برد من پسر کسی هستم که نزدیک شد و نزدیکتر به اندازه پهنای دو کمان یا نزدیکتر. من پسر کسی هستم که با فرشتگان آسمان به نمازی ایستاد. من پسر کسی هستم که خداوند جلیل بر او وحی فرستاد. من پسر محمد مستفایم. من پسر کسی هستم که با شمشیر بر چهره مشرکین میزد تا بگویند جز خدای یگانه خداوندی نیست. من پسر کسی هستم که دو بار بیعت کرد و به سوی دو قبل نماز گذارد و در بدر و هنین جنگید و لحظهی به خداوند کفر نورزید. رهبر و تکیگاه مسلمانان بود و با ناکسین و مارقین و قاستین مبارزه کرد. بخشنده و هوشمند و دلیر بود مکی و مدنی پدر حسن و حسین علی ابن ابی طالب من پسر فاطمه زهرا هستم پسر سالار زنان من پسر پاره تن پیامبرم من پسر کسی هستم که او را مظلومانه در خون کشیدند سرش را از قفا بریدند تشنه جان داد و تنش بر خاک کربلا رها ماند امام و ردایش را ربودند در حالی که فرشتگان آسمان می‌گریستند و پرندگان سیلاب اشک از دیده گشودند من پسر کسی هستم که سر او را بر منزز زدند و خانواده او را از عراق به شام به اسیری بردند مردم آواز به گریه و بلند کردند و اشک‌ها روان گشت و دل‌ها به فضع آمد یزید ترسید فتنه برخیزد. معزن را گفت از آن نماز گوید. معزن برخاست و گفت آه... الله اکبر، الله اکبر علی ابن حسین گفت آری خداوند بزرگتر و برتر و بزرگوارتر و گرامیتر از هر چیز است که از آن بیم دارم و او مرا از شر همه نگاه میدارد. گفت اشهد الله اله الا الله علی ابن الحسین گفت آری هر کس شهادت دهد من هم با او شهادت می‌دهم و با منکر آن هم داستان نباشم که معبودی جز او نیست و پروردگاری غیر او نه چون معزن گفت اشهد ان محمد رسول الله امامه از سربر گرفت و معزن را گفت به حق این محمد ساعتی خاموش باش و روی به یزید کرد و گفت یزید این پیغمبر جد من است یا جد تو اگر گویی جد توست مردم همه جهان دانند دروغ گویی و اگر جد من است، پس چرا پدر مرا به ستم کشتی و مال او را تاراج کردی و زنان او را به اسارت آوردی؟ این بگفت و دست به گریبان برد و جامعه خیش چاک زد و بگریست و گفت به خدا قسم اگر در جهان کسی باشد جدش پیغمبر آن کس منم پس چرا این مرد پدر مرا به ستم کشت و ما را مانند رومیان اسیر کرد و گفت ای یزید این کار کردی بازگویی محمد رسول الله و روی به قبله استی؟ وای بر تو از روز قیامت که جد و پدر من در آن روز خسم تو اند یزید بانگ زد معزن را که اقامه گوید میان مردم غریب و حیاهو برخواست بعضی نماز گزاردند و بعضی نماز نخوانده پراکنده شدند یزید یکی از پاسبانان خود را گفت علی ابن الحسین را در فلان بوستان ببر و خونش را بریز و همان جا به خاک سپار پس او را در بوستان برد او به کندن قبر پرداخت و سید سجاد به نماز ایستاد چون خواست او را به قطر ساند دستی از هوا پدیدار شد و بر او اوزد که به روی در افتاد و نعره کشید و بیهوش شد خالد فرزند یزید این بدید رنگ از رخسارش بپرید و سوی پدر رفت و ماجرا بگفت یزید به دفن آن پاسبان در همان گودال فرمود و سید سجاد را رها کرد